نه میبخشیم نه فراموش می کنیم. به مناسبت سی و دومین سالگرد قتلام زندانیان سیاسی در ایران تجمعی در مرکز شهر کپناک روز شنبه 29 آگوست ساعت دو بعد از در میدان کورتتووت برگزار میشه آقای علی آزاد یکی از مسئولین کمیته دفاع زندانیان سیاسی ایران در دارمارد همینطور کانون پو، پوینده و از برگزارکنندگان این تجمع همکنون روی خط تلفن با ماست تا گفتگوی در این مورد با هم داشته باشه آقای آزاد سلام و صبح بخر میگم به شما سلام به شما و شنوندگان شما در رابطه با تظاهرات روز شنبه 29 آغوز ساعت دوی بعد از ظهر که هر ساله در واقع برگزار میشه در شهر به مناسبت امسال به مناسبت سی و دومین قتل قتلام زندانیان سیاسی در این مورد در رابطه و تجمع توضیحاتی اگر دارید برای ما بدید بله همطور که شما به مطرح کردید امسال 2مین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در دهه شست هست یعنی در اصل 1357 بوده که در تابستان 57 بعد از پایان جنگ ایران و عراق حیط مرگی از طرف به صلاح آیت الله خمینی تعیین شده برای قتل زندانیان سیاسی این به مدت تقریبا دو ماه یعنی تقریبا از خرداد از تیر تا شهریور این ده قتل آم صورت گرفته دادگاهی که بسیار به قول معروف فرمالیته و در تصفیه حساب بوده با مخالفین دگراندیشان صرف نظر از اینکه اینها مخالفتشون براندازی بوده یا اینکه به بس اصطلاح ای سیاسی مخالف یا دگراندیش بودند در نتیجه این جنایت و نسل‌کشی هفته هاغل بالای 3200 نفر لیستی هست که اکنون جمعآوری شده و طبیعتاً بسیاری از افراد به خصوص کسانی که در مناطق دورافتاده بودند و امکانات دسترسی به سایت های خارجی کشور و گروه های مختلف به نهات های او نداشتن این لیستشون اصلا نیومده اسمشون نیست و هر سال دوباره این لیست ها تجدید نظر می‌کنند و همواره در حال افسایش است. در نتیجه از همون زمان یعنی همون سالی که این قتل هم صورت گرفته در کوپناک فعالین سیاسی چپ به صلاح یک تحسونی رو برگزار کرده بودند و به مدت دو سه هفته در مرکز شهر و به صلاح یک یک لوکلای حضاب چپ اون زمان دانبار تحسون کرده بودند و خواهان رسیدگی به این جنایت بودن خواهان متوقف کردن این جنایت در داخل زندان ها بودن که بر صورت این سنت از همون موقع در میان جریانات چپ رادیکال و جریانات سیاسی در کوپنا به مونده و هر سال در چهریورما یا آخر آگوست یا اوایل سپتامبر این برنامه همزمان هست با وسلا نشست های و آکسون های مختلف در خارج از کشور به خصوص وسلا مادران و خانواده های داغدار در تهران و شهرهای دیگه در خاوران در نتیجه این وسلا حرکتی هست که همچنان ادامه داره و خواهان روشن شدن عباد این جنایت هستند، خواهان رسیدگی به پرونده این جنایتکاران هستند که هر سال اصناد مختلف و مدارک زیادی رو خانواده ها، نهات بشر و حتی از داخل رژیم نیز برخی این عباد این جنایت رو روشن می که خودتونم در اطلاع دارید به مثلا چند سال پیش نواری هست که آیت الله منتظری به شکل زنده با این کمیسیون مرگ یا گروه مرگی که مسئول رسیدگی به این جنایت بودن یا این جنایت مرتکب شدن منتشر شده خب در نتیجه یه سری مسئله توی این حلوش بود چند سال بود امسال هم در رابطه با همین مسئله هست و یک اکسیون افشاگرانه هست که در مرکز شهر در کوپنهاگو برگزار می‌کنیم و در اون اکسون عکس‌های اکس کشته شده گان هست و به اضافه اطلاعیه به زبان فارسی و دو هست پخش می‌کنیم لیست مثلا کشته شده گان هستن که ما یه چجودوده 5100 تا اینا رو به شکل مثلا هم فارسی هم لاتین که مجموعی اطلاعاتی رو در این رابطه به به مراجعه کنندگان داده میشه که اینها چه کسانی هستن اصلشون چی بود در کدوم زندان و در چیزی و و چه چیزی بودن و وابستگی سیاسی یا اتعادیشون چه چیزی بوده. در نتیجه این مثلا حجم وسیعی از نعم و افراد و اینها بسیار برای مردم مثلا شوکاوار شو هست که این همه اسم تو کلاسور، یک سره مثلا پر اسامی و اطلاعات در مورد این مسائل یه چیزی هست که خیلی برای مردم به جای سوال هست اینکه چرا سکوت شده چرا در رابطه با این مسائل مدییا سکوت کردن حرفی رو نزدن اینا بر صورت یک فرصتی هست که ما بتونیم با مردم رابطه نزدیکی رو داشته باشیم و در مورد این زخم عمیقی رو که در جامعه ای ایران به سلان آببینه شده رو، برای مردم دیگر بازگو بکنیم. خب برصورت این بازگو کردن خاطرات خوشی نیست آدم به بسیار تحت تاثیر قرار می گیری از روی روانی همه چیز برای به خصوص کسانی که خودشون شاهد این شرایط بودن دردآور هست اما ضرورتی هست که این تاریخ نبایستی فراموش بشه و این نبایستی به صلاح شامل مرور زمان بشه بلکه بایستی ریشه و اساس بنیاد این طرز نگرهش این رفتار سیاسی، چنین رفتار غذایی زیر رو, رو بشه و در نتیجه مثل قتل آم هزاران ده های سطح هزار یا میلیون ها نفر افرادی رو که در های مرگ نازیست و فاشیست کشته شدن برای خانواده‌ها و کسانه که در اون چیز بودند همواره دردناک است. اما ضرورت اجتماعی هست که بایستی جهانیان بدونند بدونن و بایستی این جنایت و فرصتی کرد برای جلوگیری از تکرار جنایت ما نتیج ما هم به همین ندای به قول معروف انسانی و ندای به امنیت و حقوق انسانی و حقوق بشر و به خصوص از طرف ما به خودمون بخشی از این به اصطلاح دیدگان این چیز هستیم راجعه هستیم به صدا بایستی بگیری بکنیم و به عنوان نه یک وظیفه بلکه به عنوان یک حرکتی فراتر از این بایستی هر سال این مساله رو تکرار بکنیم هر سال بایستی یادآوری بکنیم و هر سال راه چاره این رو بجوییم که از تکرار این جلوگیری گیری بشیم با توجه به اینکه الان بخش زیادی رو ما میبینیم از دستگیر شدگان اعتراضات دیما و آباما و خیزش مختلفی که صورت گرفته دستگیر شدن، بخشی زندان شدن، بخشی اعدام شدن، بخش زیر اعدام هستند، بیش از هر زمان دیگر این رو به ما تاکید میکنه به ما به عنوان تکرار چنین واقعی دوباره به سلات جلوگیری بکنیم وظیفه رو دوچندان تر میکنه نه فقط وظایف ما بلکه وظایف همه ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند مخالف شکنج و اعدام هستند مخالف شرایطی رو که جمهوری اسلامی برای مخالفین این دگرندیشان به وجود آورده. رو بایدی به این صفت پیوندن به هر شکلی که ممکن هست در این رابطه مثلا این فرصت رو بر علیه چنین رفتاری تبدیل بکنن این روز شنبه ساعت دو تا سه بعد از دار این تجمع برگزار میشه اما بله. در اطلاع شما نوشتین که بعد از این تجمع یه گردهمایی هم در محل کتابخانه خونه پروگنده هست اونجا... چه برنامه یه بله. ما بعد از برگزار کردن مراسم آکسیون که خب به خاطر شرایط کرونا و مسائل بهداشتی و امنیتی و همه این چیزها ناگذیریم که با ساعت کار کمتر و به اصطلاح با حفظ فاصله گذاری و مجموعه شرایطی رو که در اسناد مسئولین می داشتیم پیشنهاد کردند رعایت بکنیم و در نتیجه بقیه ادامه این چیز توی یک روند واسه پیگیری بکنیم یعنی این بار بایسی باز به شکل‌های مختلف دیگه به مردم مراجعه بکنیم به اعضا و سازمان ها مراجعه بکنیم به جایی مختلف مراجعه بکنیم و این اسناد مدارک رو در اختیارشون بذاریم به علاوه ما هر سال بعد از بسلا این مراسم و اینا یک بار در سال نشستی رو هم به مناصبت گرامی داشت یاد این عزیزان هم جنبندی فعالیت‌های های یک ساله بسلا فعالین که این اکسیونا رو برگزار میکنن که بهم بودن فعالین چپ و کمونیست هستن این نشست برگزار میشه و جنبندی کار یک ساله مون و چشمنداز کارهای آینده هست که مورد بررسی قرار میگیره و امسال با توجه به این که سلا یک نفر از این اعضای فعال جنایت به اسم حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی وارد سوئد شد چند سال پیش و مثلا دستگیر شده، شناسایی شده، دستگیر شده اون بانوان دادیار سابق قبوه غذاییه بوده در زندان گوهردشت و وین خودش در قتل آم مستقی من شرکت داشته و اکنون تاجر و فعال فعالین به سلا اقتصادی خارج از کشور فعالیت داشت که خوشبختانه در سورت به دام افتاد و در زندان هست برای یازدهمین بار هفته یکی دو هفته پیش باز دادگاه تصمیم گرفته که بازداشت اونو تمدید بکنه و شکایت های زیادی در رابطه با این شخص به سلا اعلام شده اسناد و مداره که زیادی ارائه شده و ما توی این نشست سعی میکنیم فکوس کنیم روی این موضوع و اسناد مداره چیزایی که ما داریم جمعوری بکنیم برای وکالایی که پیگیر این به پرونده هستن و همینطور به حمایت بکنیم از گروه های مختلفی که در قبال این مسئله این پرونده فعال هستن و از اونا به صلا. وشتبانی این تم اصلی موضوع ما هست و طبیعتاً مثل هر سال دیگه گفتم بایستی یه مروری به کار و فعالیت‌های گذشته مون بکنیم و یه چشم اندازی رو برای های سال آینده در نظر بگیریم و تلاش بکنیم که اون رو متحقق بکنیم خیلی سپاسگزارم از شما جناب علی آزاد اگر در پایان گفتگوی نگفته مونده در خدمت شما هستیم و سالهای زیادی داشتیم که همه در گفتار شما اومده بود که احتیاج نبود مطرح کنیم من با از شما تشکر بکنم که این وقت در اختیار ما گذاشتی فقط نکته ای رو من بایستی عادواری بکنم این هست که خب طبیعتاً این امکانات در شهرها و محلهای دیگی کپنهاک یا اساسا دو شهرهای دیگه اروپا هم هم طور هست به امکان برگزاری این مراسم ما به اون شکل وسیع یا راپیمایی یا اکسیون یا گردهمایی نیست ولی بر صورت خانواده افراد دوستان زیادی هستند که عزیزانشون را در این را به دهه خونینش از دست دادن من امیدوار هستم که به هر نحوی که ممکن هست به این کاروار بین, بین المللی بپیوندن با توجه به امکانات اینترنتی که هست با توجه به سوسیال میدیای که همه در هر صورت درش فعال هستن سعی بکنن که این واقع رو نذارم شامل آر فراموشی بشه یا اینکه چی بخواهند مثلا به مرور زمان توری بشه که فکر بکنن که خب دیگه گذشت چون بخشی از اپوزیسیون به خصوص اپوزیسیونی که از داخل رژیم اومدن بیرون و خودشون نقش داشتن در درون این تطلاه تلاش زیادی رو میکنن که اینو شامل مرور زمان بکنن و به عنوان بخشش به صلاح ازش صرف نظر بکنن من امیدوارم که در شهر آهوس هم کسانی که صدای ما رو میشنوند به هر طریق ممکن به این کارزار و به این المدلی بپیبندن حمایت بکنن و دو حد اقل امکان این هست که از فیسبوک و سوسیال مدیا برای رسوندن افکار خودشون و اعلام همبستگی با خانواده های جان باختگان به صلاح تلاش بکنن برای همه شما رزوی موفقیت، فیروزی و سلامتی داریم با سپاس از شما ممنون.